قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم إن بني إسرائيل افترقوا اثنين و السبعين فرقه أمتي لا منهم ناجية في النار. این حدیث معروفی است که نه تنها شیعه بلکه علمای برجسته اهل سنت هم در منابع موسقشون نقل کردهاند که رسول گرامی اسلام فرمودن بنی اسرائیل به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدن امت من هم به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد یک فرقه از اون ناجی و رستگار است ما بقی اهل نار و دوزخی نامه ای به دستم رسید سؤالاتی مطرح شده بود با توجه به بحث دیشب که مجملی به اقتضای این که بحث از روالش خارج نشود اشاره می کنم. مفصل رو شاء الله حضوری به سوال کنندگان پاسخ عرض خواهم کرد. ما چه بخواهیم چه نخواهیم با کمال تأسف این تفرقه در تاریخ ادیان و اسلام ایجاد شده است. یا نسبت به این تفرقه باید بی تفاوت باشیم، و هیچ گونه کسب اطلاعی ننماییم که اگر این گونه برخورد کنیم آیا تشقیس حق از باطل چگونه ممکن می شود؟ اگر سؤال کرده اید علی از دنیا رفت عمر و ابوبکر هم از دنیا رفتن شما با طرح این بحث مگر علی و عمر را به این دنیا برمیگردانید و دوباره خلافت و حکومت را به علی می دهید. بارها و بارها عرض کردم و باز تأکید می کنم کدام شخص وقتی به بررسی اختلاف مکاتب و اندیشه ها و فرق میپردازد پردازد چون این ادعایی دارد من ابتدا در بین ادیان الهی و غیر الهی همین سوال رو طرح میکنم اگر حتی جدیدترین مکتب غیر الهی مارکسیستی و مکتب الهی یا اسلام یا مسیحیت یا یهودیت یا ادیان دیگر شما الان بر مبنای تشخیص حق که آیا خدا حق است راه الهی درست است یا راه مادی و طریق ایرا که مارکس مطرح کرده است اگر بخواهید حق را بفهمید کسی حق دارد این سوال را مطرح کند مگر مارکس را دوباره زنده می کنید و پیغمبر اسلام را دوباره زنده می کنید این سخن بی اساس است صحبت مرگ شخص نیست صحبت راه و مکتب اون انسان است ما اگر اختلاف مکتب امیرالمؤمنین و مکاتب خلفا را مطرح میکنیم این مطلب مطرح است که مدعی هستیم و اثبات میکنیم معتقدیم و در منابع دینی ما ادعا شده است اسلام دینی است که سعادت و تکامل را برای شما تضمین کند اما بعد از رهلت پیغمبر مدعیان اسلام متعدد و مختلفند او میگوید من حق میگویم دیگری میگوید من حق میگویم در راه در مقابل هم و متضاد است اگر من بخواهم بفهمم کدام یک از این دو راه حق است مجبورم به گذشته برگردم و تاریخ را ورق بزنم و جستجو کنم تا حقیقت را بیابم صحبت فقط حکومت علی ابن ابیطالب نیست صحبت اسلامی که علی و آل علی نشون دادن اسلامی که خط مقابل علی و آل علی خاص به مردم بشناساند که دیشب به عنوان یکی از این فرق که در عصر ما پرقدرتن هم پول در اختیار دارند هم قدرت اجرایی دارند هم استعمار جهانی پشتوانه آنهاست یعنی آیین وهابیت شروع کردیم